حکایت. پادشاهی پسری را به عدیبی داد و گفت، این فرزند توست، تربیتش همچنان کن که یکی از فرزندان خیش عدیب خدمت کرد و متقبل شد و سالی چند او سعی کرد و به جایی نرسید و پسران عدیب در فضل و بلاغت منتهی شدند ملک دانشمند را معاخزت کرد و معاطبت فرمود که وعده خلاف کردی و وفا به جا نیاوردی. گفت بر رأی خداوند روی زمین پوشیده نماند که تربیت یکسان است و تبایه مختلف. گرچه سیم و زر ز سنگ آید همی در همه سنگی نباشد، زر و سیم بر همه عالم همی تابت سهیل جاینبان میکند جایی عدیم